دوستان آیا دشمنی دارین؟ آیا با شهوت در کشمکش هستین؟ امروز معلم ما تعالیم حیرت انگیز و در این حال عملی عیسی مسیح رو از معیزه سر کوه اون با شما در درمیون خواهد گذاشت. به درس دیگری از دانشکدی کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. بسیار خوشحالیم که تصمیم گرفتید کلام خدا رو با ما مطالعه کنین و می یکی از شاگردان ایسا باشین. حالا بیاید در درس بسیار عملی امروز با معلممون همراه باشیم. ما به قسمتی از موعظه سر کوه رسیدیم که عیسی به شاگردان شنگامی که در بالای کوه هستند استفاده مناسب از کلام خدا رو نشون میده که چطور شریعت خدا را قبل از اعمال کردن بر جانهای انسانها از منشور محبت خدا عبور بدن؟ و چطور به کلام خداوند نزدیک بشن و روح شریعت رو همونطور که با شریعت مکتوب مقایسه شده درک کنن در بخش اول این تعالیم عالی که ما به اون موعظه سر میگیم عیسی به ما گفته که به درون نگاه کنین او با ما در مورد طرز برخوردها صحبت کرده و بعد از اینکه اون هشت رفتار زیبا رو به ما میده به نظر میاد که میگه حالا به اطراف نگاه کنین و این چالش رو ملاحظه کنین که با فیض خداوند نوع شخصیتی رو که در قلبتون دارید در فرهنگ اعمال کنید این یک روش کلی برای اعمال کردن شریعت هست حالا عیسی داره به طور واضح توضیح میده در پاراگراف اول که همینجا در باب پنج دیدیم او همینطور که کلام رو بر زندگی انسانها اعمال میکرد شروع به نشون دادن تفاوت بین رویکرد خودش به کتاب مقدس و روی کرد سران مذهبی به کتاب مقدس میکنه در پاراگراف اول او بر اینکه چطور تمامی اینها رو نسبت به برادرتون اعمال کنید تمرکز میکنه حالا به دشمنتون اشاره میکنه دشمن شما دقیقاً کیه و چطور باید با او رفتار کنید خب اول پاراگرافی رو میبینین که براساس دستور خداست قتل نکنید او در حال مخالفت با روشی بود که رهبرهای مذهبی اون رو ترجمه و اعمال میکردند اونها میگفتند که تنها چیزی که در رابطه شما با برادرتون همیت داره اینه که او رو نکشید تا وقتی که او رو نکشید، چیزی نیست که نگرانش باشید قرار نیست به زندان مرید یا در خطر اون نو داوری قرار بگیرید اما عیسی میگه گوش کنید اون از دست دادن روح شریعته روح شریعت صادق بودن با هم نوع خودت هست با برادر خودت صادق باش با برادرت در صلح باش و حتی خشم و رنجشی در قلبت نسبت به برادرت نگه ندار اگر برادرت رو تحقیر کنی و با حقارت از او حرف بزنی واقعا در خطر ارتکاب به قتل هستی. این روح شریعته این داشتن رابطه درست با برادر هست. حالا عیسی داره اونو با آوردن دشمن یه ذره بیشتر باز میکنه. برادری که تلاش میکنه به شما دردسر بده ممکنه قادر به کنترل کردن او نباشید. اما به طور قطع میتونید نگرش و طرز برخوردتون، نسبت به او رو کنترل کنید. عیسی اینجا با پاراگراف دیگه ای شروع می کنه که روش دیگری برای بیان چیزی که در آیات 17 تا 20 گفته که بین رویکرد من عیسی به کلام و رویکرد رهبران مذهبی یعنی شما به کلام یک تفاوت فاحش هست. این یک پاراگراف معروف از موزه سر کوه است. گوش کنید.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 زیرا بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا اینکه با تمام بدن به جهنم بیفتی من تعجب میکنم کنم که چطور بعضی از مردم از این گفته عیسی برداشت میکنند درست مثل اینکه داره میگه که فکر کردن به زنا در واقع به بدی مرتکب شدن به زنا هست بسیاری از مردم به دنبال این میگن خب من که نمیتونم جلوی فکر کردن به اون رو بگیرم و اگه اون در واقع به بدی مرتکب شدن به زنا هست پس بهتره برم و مرتکب زنا بشم چون قطعا نمیتونم جلوی خودم را از فکر کردن به اون بگیرم. این اصلا چیزی نیست که عیسی داره اینجا از اون حرف میزنه. من معتقدم کاری که اینجا داره میکنه اینه که داره گفته های خودش در آیات 17 تا 20 رو استادانه توضیح میده. بین روشی که او به کلام میپردازه و روشی که کاتبین و فریسیان به کلام میپردازن یک تفاوت هست. اگر میخواهید به روح شریعت برسید، اگر می بدونید خدا زمانی که شریعت رو مینوشت توی قلبش چه چیزی داشت و اون رو بر خودتون و جانهای دیگران اعمال کنید، اینجا عیسی داره یک مثال میده. همونطور که در مورد دشمن و برادر گفته بود. حالا بذارید بهتون بگم وقتی نوبت به زنها میرسه چطور کلام رو به خودتون و دیگران رفت بدید. ببینید او به ما گفته که چطور به درون نگاه کنیم. اون در خوشاب حال هاست. حالا به ما میگه که چطور به اطراف نگاه کنیم و رفتارهای زیبا رو در روابط و زندگی اعمال اعمال کنیم. او به برادر و دشمن ما اشاره میکنه و حالا به زنها. من معتقدم کسانی رو که عیسی شخصا دعوت کرده بود که اونجا در بالای کوه به او به پیوندن باید فقط مردها بوده باشن. چون داره باهاشون در مورد زنها صحبت میکنه. او داره به مردم میگه چطور کلام رو به زندگی خودشون و زندگی دیگران مربوط کنن. جایی که مرتبط با زنها هست او در اینجا واقعا نمیگه که فکر کردن در مورد زنا دقیقا به بدی ارتکاب زنا زن است. مسئله اینه که آیا می خواهید مرتکب زنا بشید یا نمیخواهید مرتکه زنا بشید. در کتاب یعقوب که خیلی ها معتقداً تقریبا تفسیری از سر کوه هست، یعقوب به ما چیزی رو میده که میشه به اون آناتومی گناه گفت یعقوب در باب اول به ما میگه که چطور میشه وقتی که گناه میکنیم و میگه اون با یک طمع و فریب آغاز میشه شما چیزی رو میبینید که واقعا اونو میخواید و بعد در نگاه به اون فریب وجود داره حالا شما جلوی نگاه اول رو نمیتونید بگیرید اما اگر به نگاه کردن و نگاه کردن ادامه بدید یعقوب به اون شهوت میگه او در آناتومی گناه میگه که چیز بعدی شهوته. یک نگاه که میکنید اون طمع و فریبه و بعد اگر نگاه ادامه دار باشه شهوته یعنی یک میل قوی برای اون وسوسه وجود داره. او این رو به ما تعلیم میده تا اینکه ما گناه نکنیم و عیسی داره با عبارات متفاوتی به ما میگه که باید در مورد اون وسوسه اون نگاه، نگاه مداوم و شهوت کاری بکنیم. او در یعقوب باب یک به ما میگه که تقریبا مثل اینه که شهوت شما مثل یک آهن روباس و اون وسوسه یک تکه آهن. اگر ارتباط مغناطیس بین شهوت و اون وسوسه رو جدا نکنید اون وقت به سمت اون وسوسه کشیده خواهید شد. این تقریبا چیزیه که عیسی اینجا داره به این مردان در بالای کوه تعلیم میده. او نمیگه که نگاه آمیز به یک زن به بدی زنا با او هست او داره میگه که نکته این آیا میخواهید مرتکب زنا بشید یا نه حالا اگر نمیخواهید مرتکب زنا بشید شاید نتونید جلوی نگاه اول رو بگیرید اما قطعا میتونید با اجازه ندادن به خودتون برای نگاه دوم کمک کنید یکی از پدران بزرگ کلیسا گفته شما نمیتونید جلوی پرواز پرنده ها بالای سرتون رو بگیرید اما میتونید جلوی لان ساختنشون رو توی موهاتون بگیرید. اگر به نگاه کردن و نگاه کردن و فکر کردن شه و در مورد اون زن ادامه بدید، بعدش دیگه احتمال داره زمانی برسه که ببینید اون زن در آغوش شماست. عیسی داره میگه که روح قانون فقط مرتکب زنا شدن نیست. عمل واضح زنا. کاتبین و فریسیان میگفتن تا وقتی که با اون نخابید گناه نکرده ای. اما عیسا داره میگه نه روح شریعت خیلی فراتر از اون هست روح شریعت این سوال رو مطرح میکنه آیا میخواهید گناه کنید یا نمیخواهید گناه کنید اگر نمیخواهید گناه کنید پس حتی اگر نمیتونید جلوی نگاه اول رو بگیرید دفعه دوم نگاه نکنید و به نگاه کردن ادامه ندید و تمایل نداشته باشید این میل قوی رو نداشته باشید و به فکر کردن در مورد اون زن ادامه ندید اگر رشته مغناطیس بین شهوت و وسوسه ای اون زن به خودتون رو قطع نکنید اون وقت باید منتظر زمانی باشید که تا وقتی که شما واقعا مرتکب عمل زنا بشید در ارتباط با نحوه جلوگیری از این گناه عیسی درسی عالی به ما میده او میگه پس اگر چشم راست تو باعث گمراهی تو میشود آن را بیرون آور و دور انداز زیرا بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست بدهی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 چشم راست چشم بهتر در نظر گرفته شده بود و دست راست دست بهتر در نظر گرفته شده بود بنابراین چیزی که ایسا در اینجا داره میگه اینه گناه چیز وحشتاوریه که باید واقعا خودتون رو برای جلوگیری از گناه کردن تربیت کنید حتی اگر حزینه اش چشم راستتون باشه حتی اگر حزینه اش دست راستتون باشه باید در مورد گناه جدی باشید باید به این پی ببرید که ببرید گناه مثل یک سرطان هست. همونطور که نمیتونید با سرطان همزیستی زیستی کنید، پس نمیتونید با گناه هم هم زیستی کنید. اگر در مورد گناه کاری نکنید، شما رو نابود خواهد کرد. این خاصیت گناهه، پس شما باید در مورد نداشتن گناه در زندگیتون جدی باشید. عیسی اینجا حقیقتا نمیگه که چشم خودتون رو در بیارید یا دستتون رو قطع کنید. اگر عملا در موردش فکر فکری اگر چشم راستتون رو در میآوردید یا دست راستتون رو قطع می کردید هنوز هم چشم چپتون رو دارید هنوز هم میتونید ببینید و اگر با چشم راستتون میتونید گناه کنید حتما با چشم چپتون هم میتونید گناه کنید در مورد دست هم همین چیز صدق می کنه من معتقدم که چیزی که ایسا در اینجا تعلیم میده چیزی مثل اینه اگر چیزی که دارید نگاهش می شما را به سمت گناه هدایت پس نگاه نکنید یا اگر کاری که با دستتون انجام میدید و اون به صورت تحت لفظسی لزوما نشان دهندهیه کاری نیست که با دستاتون می کنید بلکه هر کاری که دارید می کنید اگر کاری که می کنید شما رو به گناه کردن هدایت میکنه پس انجام اون رو متوقف کنید زمانی که او پا رو در ارتباط با این تشبیه ذکر میکنه میتونید اون رو به این روش اعمال کنید اگر جایی که میری تو رو به گناه هدایت میکنه پس نرو چشم نماینده تمام اون چیزی که میبینید و چون اونو میبینید، اون رو میخواید. دست نشاندهنده تمام فعالیتهای شماست. چیزی که تمام روز انجام میدید. پا نماینده جایی هست که میرید. بیشتر انسانها در ذهنهاشون قبل از اینکه خونه رو ترک کرده باشن، مرتکب زنا میشن. شما در کلام اون رو به یاد خواهید آورد. چشم نشاندهنده ذهن. کمی بعد همینجا در باب شش عیسی میگه چراغ بدن چشم است اگر چشم تو سالم باشد تمام وجودت روشن است اما اگر چشم تو سالم نباشد تمام وجودت در تاریکی خواهد بود پس اگر آن نوری که در تو است ظلمت باشد چه ظلمت عظیمی خواهد بود چیزی که عیسی اونجا داره توصیف میکنه اینه که ما چیزها رو چطور میبینیم میتونیم یه زندگی شاد داشته باشیم یه بدن پر از نور و یا میتونیم یه زندگی ناراحت داشته باشیم؟ بدنی که پر از تاریکیه. این به این بستگی داره که چیزها رو چطور میبینیم؟ چشمنداز ما و طرز فکر ما چیه؟ چیزی که ایسا اینجا درس میده اینه که اگر نمیخواید مرتکب زنا بشید پس باید نگاه خودتون رو تربیت کنید. باید ذهن خودتون رو تربیت کنید. گناه در ذهن شروع میشه. شهوت محصول فکره. اون چیزی که در ذهنتون ادامه داره اون زندگی توی افکارتونه اون چیزی که منجر به گناه میشه عیسی داره میگه که اگر نمیخواهید مرتکب زنا بشید باید ذهنتون تون رو تربیت کنید معنیش چشمه یا چیزی که بهش نگاه میکنید چیزی که میبینید فلسفه کتاب مقدس در مورد وسوسه همیشه اینه شما ستون محکمی نیستی عیسی میگفت باید هر روز دعا کنید ما را از وسوسه دور نگاه دار. خدا یا اجازه نده که ما وسوسه بشی در آناتومی یک گناه همونطور که یعقوب در باب اول ارائه میکنه اول شما این طمع و فریب رو دارید که این نگاهه و بعد شهوت اما تا وقتی که مواجهه واقعی نیاد هنوز وسوسه نشدید و کلام میگه همون طوری که ما وسوسه میشیم عیسی هم از هر جهت وسوسه شد اما گناه نکرد وسوسه شدن گناه نیست اما سوال اینه میخواهی گناه کنی یا نمیخواهی گناه کنی؟ زمان پیروزی در نبرد نقطه وسوسه یا رویارویی آشکار نیست. زمان برد یا باخت در نبرد قبل از اینه که خونه رو ترک کرده باشی. اون جهت بادبان هست. اون روشی هست که فکر میکنید. اون چیزیه که امروز قرار انجام بدید. جاییه که قرار امروز برید. زمانی که اون تصمیم ها رو در ذهنتون میگیرید اون نقطه زمانی هست که در این گناه نبرد رو میبرید یا میبازید. عیسی میگه که این روح فرمان هفتمه. بنابراین نباید مرتکب زنا بشید. و کاتبین و فریسیان دارن به سادگی بهتون میگن تا وقتی که با او نخابیدید گناه نکرده ای. خب این روش رسیدن به روح این قانون نیست. اگر به روح این فرمان نگاه کنید متوجه میشید که هدف این فرمان این بوده که گناه نکنیم. زنا واقعا خوب نیست وقتی که هزینه اون رو برآورد کنید و عواقب رو در نظر بگیرید برای ما خوب نیست برای همسرمون خوب نیست برای بچه هامون خوب نیست و برای اطرافیان ما خوب نیست پس اگر واقعا نمی خواهید گناه کنید نگران نگاه کردن و شهوت باشید به عبارت دیگه حساری دور خودتون بسازید که شما را از مواجهه آشکار با وسوسه محافظت کنه روح اون فرمان این هست که تعمق کنیم چطور این تعلیم معزه سر کوه رو به زنان مرتبط کنیم. همچنین گفته شده هرگاه مردی با زن خود متارکه نماید باید طلاق ای به او بدهد. اما من به شما میگویم گویم هرگاه کسی زن خود را به جز به علت زنا طلاق دهد او را به زناکاری میکشاند. و و هرکس با چنین زنی ازدواج نماید زنا میکند. آیاتی رو که الان خوندم CO1 و co دوی باب پنجمتتا بود. الان در سختترین قسمت معزه سرکوه هستیم. به دو تا آی رسیدیم که بیشتر شبانها ترجیح میدن توی معزه های یک از اونها دوری کنند. اما وقتی که در حال مطالعه آیه به آیه قسمتی از کلام هستید به سادگی نمیتونید از آیات سختی مثل این دو اجتناب کنید. بعدا توی این باب در دو پاراگراف آخر باب زمانی که عیسی با ما در مورد دوست داشتن، دشمنهای ما صحبت میکنه، آیات مشکلتری هم پیدا می کرد. اما اینجا عیسی داره به ما تعلیماتی در مورد همسرانمون میده. میدونید که این دوتا قطعا به هم مربوطن. ظاهرا دلیل اینکه کاتبین و فریسیان این رویکرد رو پیش گرفته بودن این بود که بنابراین نباید مرتکب زنا شوید. احتمالا به خاطر شهوت درون قلبهاشون بوده. شاید نمیخواستند که با اون سر و کار پیدا کنن. و برای همینه که کلمه قانون رو به عنوان رویکردی بر فرمان هفتم گرفتن و بعد رویکردشون نسبت به طلاق احتمالاً به دلیل مشابهی بوده جایی که طلاق ذکر شده ممکنه اینطور بوده که اونها فرمان سستی میخواستند برای اینکه نمیخواستن منحصرن با همسران خودشون زندگی کنند بنابراین چیزی که اونها بر طبق آیه 31 تعلیم میدادند ظاهرا چنین چیزی بوده هر کسی که زنش را طلاق میده باید مدرکی به او بده باید به او طلاق نامه بده حالا اون بر اساس کتاب مقدسه اون برمیگرده به کتاب تصنیه باب 24 آیه یک موسا اون رو مجاز کرده بود اما همونطور که عیسی در متا باب 19 اشاره میکنه، موسی موسا اون کار رو به عنوان یک امتیاز برای زنها انجام داد او زمانی این کار رو انجام داد که واقعا در تلاش برای حفاظت از زنها بود ببینید در قدیم مردها اختیار طلاق ساده ای داشتند در زمان عهد قدیم اگر مردی از زن خودش عملا به هر دلیلی ناراضی بود میتونست او رو طلاق بده و بیرون کنه زن بیچاره هیچ اختیاری نداشت او واقعا در شرایط سختی می بود اگر زن یک همسری نداشت به سختی میتونست در چنین فرهنگی به زندگی ادامه بده و اون مرد مجبور نبود که به کسی بگه که برای چی اون زن رو طلاق داده بود حتی دلیلش هم ممکنه این بوده باشه که اون زن نسبت به مرد بی وفا بوده. اما اون واقعا زن رو در جایگاه وحشتناکی قرار میداده بنابراین موسی برای حفاظت از زن این رو الزامی کرد. اگر همسرتون رو طلاق میدید باید به او یک تلاق نامه بدید و اون تلاق نامه باید علت طلاق رو جزء به جزء شرح داده باشه. اون برای محافظت از خانم بود. ارگیز مقصود خدا یا موسا این نبوده که طلاق وجود داشته باشه اما اگر وجود داره پس مرد باید مدرکی برای حفاظت زن بده به یاد داشته باشید که رهبران مذهبی سراغ عیسی آمده بودن و از او سؤالی در 19 متا پرسیده بودند بعضی از فریسیان هم پیش او آمده و از روی امتحان از او پرسیدند آیا جایز است که مرد به هر علتی که بخواهد زن خود را طلاق دهد میبینید این کاریه که اونها در اون زمان در حال انجام دادنش بودند و به پاسخ ایسا به اون نگاه کنید؟ آیا تا به حال نخوانده اید که پروردگار از ابتدا انسان را زن و مرد آفرید؟ به این سبب است که مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و دو یکی می شوند. از این رو آنها دیگر دوتن نیستند بلکه یکی هستند. پس آنچه را که خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد پرسیدند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 اگر شوهر در مقابل زنش باید چنین وضعی داشته باشه بهتر دیگه کسی ازدواج نکنه اما عیسی به اونها گفت همه نمیتونن این رو قبول کنن مگر کسانی که استعداد اون رو داشته باشند اون تصویری میده از جایگاهی که این مردم مخصوصا رهبران مذهبی از لحاظ فرهنگی در مورد موضوع ازدواج و طلاق در اون قرار داشتن موسی هرگز واقعا به انسانها فرمان نداده بود که از همسرانشون جدا بشن اگرچه اگر از همسرشون جدا میشدن باید به اون مدرکی که نشان دهنده دلایل طلاق بوده میدادن عیسی با اونها گفت به خاطر سنگدلی شما بود که موسی اجازه داد از زن خود جدا شوید ولی از ابتدای خلقت چنین نبود عیسی با گفتن این به رهبران مذهبی پاسخ داد هرگز مقصود خداوند این نبوده که اونطور باشه من همیشه تعجب میکنم که حتی شاگردان اونجا در مت 19 به عیسی گفتن خب اگر اینطوره اگر این رابطه ازدواج واقعا ماندگاره بهتره که اصلا ازدواج نکنیم عیسی با گفتن چنین چیزی به اونها پاسخ داد که خب میتونید چندتا تا کشیش یا وکیل بگیرید که حرف طرفه این رو بزنه و شما بتونید راه گریزی برای این چیزها پیدا کنید آیا عیسی با گفتن چنین چیزی به اونها پاسخ داد که خب میتونید چندتا تا کشیش یا وکیل بگیرید که حرف طرفه این رو بزنه و شما بتونید راه گریزی برای این چیزا پیدا کنید نه او این رو نگفت او گفت گوش کنید شما هرگز چیزی رو که مقصود خدا از ازدواج بوده تجربه نخواهید کرد مگر اینکه روح القدس به شما داده بشه و فیض به شما داده بشه که اونطور که شایسته است با همسرتون رابطه داشته باشید برگردیم به متی جایی که عیسی میگه رهبران مذهبی به شما تعلیم میدادن که کل موضوع در مورد همسرتون اینه اگر دیگه نمیخواید با او زندگی کنید به شرطی که به او مدرکی بدید که نشون بده چرا طلاقش دادید، پس طلاقش بدید. اما بذارید بگم که من اونو رو چطور می‌بینم و اینکه روح این قانون واقعا چی هست. هر کسی که جز به دلیل خیانت در زناشویی زنش رو طلاق بده، باعث زناکار شدن اون زن میشه و هر کسی که با یک زن مطلقه ازدواج کنه، مرتکب زنا میشه. ببینید زمانی که عیسی این تعلیم رو میداد، این تعلیم به عنوان یکی از گفته‌های عیسی در نظر گرفته شده که قطعاً باید برای اون زمان بوده باشه چون که حتی شاگردان میگفتن اگر این طوریه اگر نمیتونید از ازدواج رها بشید بهتره که اصلا ازدواج نکنید دوباره باید به اول برگردیم اون جایی که عیسی اونها رو به متا باب 19 میبره مقصود خدا زمانی که این فرمان رو میداد چی بود هدف خدا زمانی که این قانون داده شده بود چی بود روح این قانون چیه هدف و مبانی این قانون چیه و چطور محبت خداوند از طریق این فرمان ابراز میشه اگه یه دقیقه به اون فکر کنید این به خیلی عقب برمیگرده یعنی پیدایش با به یک و دو در آغاز نقشه خداوند این بود که دو انسان رو بگیره و اونها رو شریک هم کنه بنابراین در نتیجه اون شراکت اونها انسان‌های ای رو به دنیا بیارند که اونها هم روزی خودشون به عنوان انسانها شریک اختیار کنند و انسان‌های کوچکی به دنیا بیارند ببینید اون قانون خداوند برای پر کردن زمین با انسان‌های خوب هست. حالا برای اینکه این قانون عمل کنه خداوند باید دو شخص لایق داشته باشه و اون دو شخص لایق باید یک مشارکت مناسب داشته باشن و بعد اون مشارکت مناسب افراد لایقی رو ایجاد خواهد کرد که برای داشتن شراکتهای مناسب به جهان خارج برن و والدین ای بشن. در عهد قدیم سلیمان گفته که اون اشخاص که با هم شریک میشن مثل کمان هستن و انسانهایی که اونها به وجود میارن یا بچه هاشون مثل تیرها هستن. این ازدواج، این شراکت، به عنوان یک کمان، این افراد یا تیرها رو به دنیای خارج پرتاب خواهد کرد. میزان پرتاب و جهتی که تیرها در اون به دنیای خارج میرن، بستگی به کمانی داره که اونها ازش پرتاب شدن. اگر میدونستید که این قانون خدا بوده و شما میخواستید عمدن خرابش کنید یا کل اون تلاش رو نابود کنید چی کار میکردید؟ آیا نخ اون کمان رو نمیبریدید به نظر میاد که این کاریه که شریر برای قرنها و قرنها در حال انجام دادنش بوده. او میدونه که این روشیه که زمین پر از انسانهای خوب میشه. همه چی بستگی به اون شراکت داره. کمانی که اون تیرها از اون پرتاب میشن. او میگه بله فقط کافی نخ اون کمان رو ببرم و کل خانواده رو در هم بشکنم. خوب شریر از ابتدا تا الان در حال تلاش برای از هم همپاشیدن این قانونه قایه حیات بوده و حتی رهبران مذهبی توسط شرید تحت تاثیر قرار گرفته بودند ظاهرا به این شراکت به دیده تحقیر نگاه می‌کردند و اون رو جدی نگرفته بودند عیسی چرا اینجا اینقدر شدید به این گروه حمله می کنه؟ چرا او چیزی رو که ما ثبات رابطه ازدواج مینامیم تعلیم میده اون فقط به نفع دو شریک نیست اون به نفع بچه هاشون هم هست و اون نه تنها به نفع بچه ها هم هست بلکه برای جلال خداوند هم هست. چون این روشیه که خداوند میخواد زمین رو با انسانهای خوب پر کنه. تنها راهی که این طرح میتونه کار کنه اینه که پیوندی خدایی بین این دو نفر باشه. در متانوزده عیسی تعلیم داد که باید کمک خداوند رو داشته باشن. اون پیوندی خدایی هست. برای اینکه اون ایده خداوند بود. اون پیوندی خدایی هست چون اون نقشه خدا برای پر کردن زمین با انسانهای خوب هست باز هم مفهوم معزه سرکوه رو به یاد بیارید تمام این مردم در اطراف دامنه های جلیل هر نوع مشکلی که بشه تصورش رو کرد دارن عیسی جایی که میخواد اشخاصی رو آماده کنه تا راه حل و پاسخ او به تمامی اون مشکلات در پایین تپه بشن داره به اون مشکلات رسیدگی میکنه تمامی تعلیم معزه سر یا در اون مفهوم بررسی بشه چرا پایین تپه این همه مشکل وجود داره؟ این یک دلیل داره برای اینکه انسانها روح قانون ازدواج رو گم کردند اونها قانون ازدواج رو از نظر شریعت مکتوب تفسیر می کنند و اصول، هدف و روح قانون در رابطه با ازدواج رو فراموش کردند ازدواج نقشه خداوند برای پر کردن زمین از انسانهای خوبه اگر اون نقشه به هم بخوره بعدش در جامعه هر مرج خواهید داشت چون که دارید انسانهای نالایق رو به متن حیات به متن انسانیت میفرستید زمانی که عیسی مطالب سخت گیرانش رو در مورد ازدواج میگه برای طلاق هم پایه‌ای میده همونطور که خیلی از مردم این رو تفسیر میکنن روشی که عیسی این موضوع رو اینجا در آیه 32 بیان میکنه اینه که جز خیانت زناشویی هیچ چیز نمیتونه این رابطه رو به هم بزنه و این نشون میده که ازدواج مسیحی قراردادی بین دو نفره که بر مبنای انحصار پایه گذاری شده. زمانی که انحصار بی حرمت میشه، قرارداد پوچ و از درجه اعتبار ساقت هست. این روشیه که بر اساس آیه 32 خیلی ها ازدواج رو تفسیر میکنن. بعضی ها میگن که اینجا نگرش یهود این بوده که اگر یک شوهر شب عروسی پی ببره که همسرش باکره نبوده، اون وقت، او این انتخاب رو داره که اون زن رو طلاق بده و یا این حق رو داره که بگه من به هر حال با او ازدواج خواهم کرد همین که او تصمیم گرفت که او رو به همسری خودش بگیره و طلاقش نده از اون نقطه به بعد رابطه این ازدواج ناگسستنی خواهد بود این تفسیریه که برخی نسبت به این موضوع می کنن. تعلیم متا 19 اینه که دو نفر یکتن هستن ازدواج پیوندی الهی بین دو نفر هست که در نتیجه اون اونها یکتن میشن. خیانت اون یکتن شدن رو بیرمت میکنه. باب اول پیداش میگه که خدا اونها رو زن و مرد آفرید. اونها رو برکت داد و اونها را آدم نامید. آدم ها نه، بلکه آدم، مرد و همسر با هم آدم بودند و آدم در زبان ابرانی یعنی مرد. ما به طور عام از اصطلاح مرد به معنی انسان و نوع بشر استفاده می کنیم. زمانی که خدا گفت برای مرد خوب نیست که تنها بماند اون میتونه به طور عام به معنی انسان به کار گرفته بشه اما برای دو نفر که در ازدواج یک میشن پولس رسول میگه دیگه براشون غیر قابل تصوره که با کس دیگه یکی بشن در اول قرنتیان باب شش پولس به قرنتیان که در گذشته ها قبل از اینکه ایماندار بشن یک عالم فساد جنسی داشتن فسادی که به نظر میومد که به تجربه کلیسایشون هم آورده بودن میگه آیا نمیدانید کسی که با فاحش ها ذنا می کند, با آنها یک تن می شود. حالا شما نمیتونید با بیش از یک شخص یکتن بشید. بنابراین شما با همسرتون یک تن هستید و اگر شما با کس دیگه بخوابید، پس با او یک تن میشوید و اون یکی بودن با اون همسر رو بی حرمت می میکنه. بنابراین اون پایه ای هست برای طلاق. زمانی که یکی بودن بی حرمت بشه، البته اون جاده ای دو طرفه هست. اگر از طرف زن اتفاق بیفته، شوهر آزاده که دنبال طلاق باشه اگر از طرف شوهر اتفاق بیفته زن هم آزاده که به دنبال طلاق باشه حالا اون به این معنی نیست که اونها باید دنبال طلاق باشند. اون فقط معنیش اینه که اونها این انتخاب رو دارن چون این یکتن شدن اتحادی انحصاری است که بیحرمت شده و زمانی که انحصاری بودن اون بیحرمت میشه حالا دیگه هیچ یگانگی در اون ازدواج نیست اما دوباره روح قانون و متن قانون رو که ایسا در این پاراگراف ها در متا باب پنج داره شرح میده به یاد بیارید. در هر یک از این شش پاراگراف و در حال توضیح دادن چیزیه که در آیات 17 تا 20 گفته. او میگه یک تفاوت بین روشی که من کلام رو به کار میبرم و روشی که کاتبین و فریسیان کلام رو به کار میگیرن وجود داره. من از نظر روح قانون به کتاب مقدس میپردازم و اونها از نظر شریعت مکتوب. من دارم قانون خدا رو قبل از این که بر جانهای انسانها اعمال کنم از منشور عشق و محبت خدا رد می کنم. اما فریسیان دارن با مردم از طریق شریعت مکتوب رفتار می و نه از روح شریعت. او اون بیانیه رو در آیات 17 تا 20 و بعد در هر کدوم از این شش پاراگراف بیان کرده که همش با عیسی داره میگه شروع میشه. در واقع اونها به شما اینطوری گفتند اما حالا اجازه بدید که من اون روشی رو که واقعا هست بگم او داره چیزی که در آیات 17 تا 20 گفته توضیح میده او همچنین داره به مردمی که در بالای کوه تعلیم درباره خوشا حال ها رو شنیدند یاد میده که به درون نگاه کنند و حالا بهشون نگاه کردن به اطراف رو یاد میده و بهشون نشون میده که چطور باید این چیزها رو در روابطشون نسبت به برادر، دشمن و به طور کلی با زنان و بعد زنان خودشون اعمال کنن ما هم باید به همین ترتیب عمل کنیم اینجا جاییه که من فکر میکنم درک کردن واقعی روح این قانون همونطور که عیسی داره اونو توضیح میده و اینجا در این قسمت متا پنج اونو به کار میگیره برای ما مهمه ما باید قانون خداوند رو از منشور عشق خداوند رد کنیم قبل از اینکه این قانون خدا رو بر زندگی انسان ها اعمال کنیم زمانی که کلمه ای مثل پارسا شمرده شدگی رو میشنوید که به معنی بی گناه بودن در نظر خدا هست متوجه تعلیم انجیل میشید که میگه گذشته ما درست مثل اینه که هرگز گناه نکردیم زمانی که گناه رو اعتراف میکنیم و به خون مسیح برای بخشش اعتماد میکنیم آیا اون گذشته که الان تبرئه شده شامل ازدواج های سابق ما نمیشه این توجه ما رو متمرکز به این سوال میکنه یک ازدواج از دید خداوند چی هست؟ کسی را که خدا به هم پیوند داده اجازه ندهید کسی از هم جدا کند. این ازدواج از دید خدا هست. آیا میتونیم بگیم هر کسی که یک تکه کاغذ رو امضا کرده توسط خداوند به هم دیگه پیوند خورده؟ ازدواج از منظر خداوند چیه و نگرش کلیسا نسبت به افرادی که چنین چیزی رو در پیش زمینشون قبل از اینکه ایمان بیارن و از, از کلیسا بشن داشتن چی هست؟ فکر می کنم برای ما مهمه که قانون خداوند رو بعد از رد کردن قانون او از منشور عشق خداوند برای این افراد اعمال کنیم. اما وقتی افراد در مسیح و در بالای کوه هستند به یاد داشته باشید تمامی این تعالیم به شاگردان داده شده بود. به محض اینکه افراد به مسیح میان نباید هیچ خطایی در این مورد وجود داشته باشه. ازدواج رابطه ایست بین یک مرد و یک زن که بر اساس انحصار پای گذاری شده. اون وحدتی منحصر به و تا وقتیه که مرگ اونها رو جدا کنه. به جز خیانت در زناشویی هیچ چیز نباید اونها رو از هم جدا کنه. من معتقدم که این شرایطی هست که عیسی بر اساس اون برای طلاق اجازه میده. دوباره همونطور که او در آیات سی و و سی و به ما میگه چیزی رو که اینجا در جریانه به یاد داشته باشید. او داره تفاوت بین رویکرد خودش نسبت به کتاب مقدس و رویکرد رهبران مذهبی نسبت به کتاب مقدس رو شهر میده. او داره به افرادی که با او در اولین گردهمایی همایی مسیحی در خلوت ملاقات کردند نشون میده که چطور کلام خدا رو در زندگی‌ها و روابط شخصی خودشون به کار بگیرن و بعد چطور کلام خدا رو در زندگی و روابط انسانهای دیگه اعمال کنه. ما باید یاد بگیریم که چطور کلام خدا رو در مورد دیگران به کار بگیریم عزیزان وقت امروز ما در مطالعه معزه سر کوه به پایان رسید دعای ما اینه که این درس ها به شما کمک بکنه زمن اینکه در کلام خدا امیغتر میشین در ایمان و شناختتون رشد کنین و بذارید کلام خدا در شما ریشه بگیره و اجازه بدین اصول کلام خدا زندگی های شما و نحوه رفتارتون با دیگران رو تغییر بده. و همینطور دعای ما اینه که تا برنامه بعدی شما ترتیب بدین در جلسه بعد با ما همراه باشید. امیدواریم محبت و فیض خدا زندگای شما رو پر کنه و از شما لبریز بشه تا دیگران محبت و فیض خدا رو توسط شما تجربه کنند.